من استنبل و هاي في ريبتو طناميبر بار من ازعزاب زخو عذاب قبر بتو طناميبر رمضان من حات الرب ماه فراواني خيرات وعزيم در بركات وداراي احكام مستقل لأست كمسلمان بايد ان رايات بگیرد. روزه یعنی پرهیز از خوردن و آشامیدن و همبستری از طلوع فجر صادق آغاز شده و تا غروب افتاب به همراه نیت ادامه دارد و آن رکنی از ارکان اسلام می باشد و گرفتن آن بر تمام مسلمانان با نس قرآن و سنت و اجماع امت واجب است و اما شرط های وجوب روزه واجب نیست بجز بر مسلمان عاقل و بالغ و سالم و مقیم و توانمند بر بیماری که بیماری به فزونی بوده و یا شفایش به تاخیر افتاده است واجب نیست و بر مسافر واجب نیست و گرفتن روزه بر او مستحب است تا زمانی که دچار ناراحتی نشود و همچنین بر کودکان واجب نیست و مستحب است که او را برای ایام بلوغ تربیت کرده و آماده نماید و همچنین بر کسانی که توانایی گرفتن آن را ندارند مانند اشخاص کهنسال که و بیماری که شفای میابد و زن حامله و شیرده زمانی که احساس کند که روزه به تکلیف آن نظر میرساند و روزه دارای ارکانی باشد آن نیت و پریز از مبتلات روزه و زمان است و کافیس نید را در اولین روز ماه رمضان برای تمام روزه ماه جاری کرد. و هر که روزه بخاطر کسالت و یا شهوت ترک کند او مرتکب کبیره از گناهان کبیره شده است و اگر در ملای عام دست به روزه خاری زد قوت داد خواهد شد بر حسب آنچه که امام مقرر کرده است و از آنچه که در بزرگی روزه وارد شده است فرموده او صلی الله علیه و سلم که الله عز و جل می‌فرماید تمام اعمال بنی آدم برای خودش است الا روزه که آن برای من است و خود پاداش آن خواهم داد روزه سپر است پس هرگاه یکی از شما روزه گرفت پس ناسزا نگوید و آن روز فریاد نکشد اگر کسی او رادوش نمداد یا با او درگیر شد بگوید من روز ام قسم به کسی که وجود و نفس محمد در دستان اوست بوی دهان روزدار نزد الله در روز قیامت از بوی مسک و عمبر محبوب تر است رمضانو یا تاجسانه یا منحات رب الله فرها قد دنیانا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 لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مسلمان و مومین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید با امیدین که روزهای ماه مبارک رمزانتان به خوبی سپری گردد. امروز یک شنبه 14می رمضان سال 1437 هجری قمری. توجه شما را جلب می‌دارم به آخرین تحولات و پیش روی های دولت اسلامی در خط چند خبر. صلی الله علیه الصالحین. کشته شدن 21 نیروی نظامی سوری در ولایت حما. صلی الله یک بال جنگی روافیز در رمادی سقود کرد سلیلو سواری. سلیلو سواری. تشدیدی در گریه ها در شهر فلوجه سلیلو سواری. سلیلو سواری. و حلاکت 24 معاریز سوری در قلمون شرقی سلیل سواری, سلیلو سواری. رشید و درب القتالی و این هم خبرها در اثر یک حمله استشادی دولت اسلامی در شهر اسریا در شرقی ولایت هما تن از نیروهای نظامی نظام سوری کشته شدند این در حالی است که روز گذشته نیز در این محل در گیری های شدیدی رخ داده و تلفات سنگینی بر دشمن وارد گردیده بود. رمادی، مجاهدین دولت اسلامی در جریان درگیری‌ها در شمال غربی شهر رمادی یک بال تییاره جنگی نیروهای عراقی را سقوط دادند. دمشق، تازه‌ترین گزارش از شام حاکی است که یک حمله کننده ی دولت اسلامی با استفاده از واسکتی فیدایی بر مقر قتیفه در شمال شرق دمشق حمله کرد. در اثر این حمله فرماندی محلی نصریه ها با اسم عبداله علی دو همراه شریفانی جهان نمگردید. فالوجا درگیریها هنوز هم در شری فلوجه جریان دارد. تازه ترین ها می گوید که در نتیجه دو عملیات استشادی در نزدیک فرمانداری شری فلوجه بیش از 20 اسکاری راقی کشته شدند. یا خبری دیگر می گوید که یک آخوندی شیعه در درگیریها در منطقه از راقیه کشته و یک ارادا تانک منحدم گردید است. درگیری‌ها در جنوب فلوجه از روز جمعه بدین سو شدت گرفته است. نیروهای دولت اسلامی چندین حمله را بر مناطقی که نیروهای عراقی بسوی آنها پیش روی کرده بودند، انجام دادند. در سلسله این حملات، پنج حمله کننده استشادی تجمعات ارتش عراق را در مناطق مختلف جنوبی هدف قرار داد. همچنان خبرها از های شدید در این مناطق نیز حکایت دارد. خبر می‌افزاید که در تمام این حملات بیش از 100 شیعه کشته و زخمی و 23 تانک همار به شمول دو زرهدار دو موتر حامل افراد و یک بلدوزر از بین رفته است همچنان در این حملات تعداد اسلحه و مهمات نیز غنیمت گردید گزارشها ها که گروه های معارض سوری از چندین محور بر موازی دولت اسلامی در قلمون شرقی حملاتی را انجام دادند نیروه های دولت اسلامی به عملیات متقابل پرداخت زربات سنگینی را بر دشمن وارد کردند خبر میگوید که در جریانی درگ 24 تن از جنگجوی مخالف کشته و این حملات نیز به ناکامی انجامید و خبر اخیر از لیبیا خبرها از این کشور است که مجاهدین دولت اسلامی یک بالتیاره اطلاعاتی نیرهای هفتر را در منطقه سابری شهر بینغازی سقوط دادند شنوندگان عزیز این بود آخرین تحولات و پیش های دولت اسلامی از توجهیتان جهانی سپاس و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته منحج من تا منحج شنواندگان گرامی رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه منحج تا منحج ما با مسلم خراسانی را بپذیرین باز هم استاد معزز احرار را در این برنامه با خود داریم قسم که در مباحث گذشته بالای موضوعات مختلف از جانب استاد تماس گرفته شد حال می از استاد سوال میکنیم استاد بیشتر کتب را که اکثر متفکرین اسلامی مینگارند، بیشتر و بیشتر بالای جنگ فکری و خطر آن صحبت میکنند مشاكم در پیوند با این شیوه و جنگ های فکری به ما و شنوندگان رادیو صدای خلافت معلومات تشکر الحمد لله وحده والصلاة, والصلاه والسلام على من لا نبي بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لی امري واحلل عقده من لسانی يفقه قولي وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم وقال تعالى والفتنة اشد من القتل وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع وقال تعالى اذًا كثيرا اما طيب تشكر بما باظ وقت دديت بيش ازينك سوال شما تمرکز کنم و پاسخ با سوال شما بدهم میخواهم یک مرور مختصر در پیوند به مباحث گذشته داشته باشم خب پیش از آن باز هم برای تمام امت مسلمه به ویژه اساکر دولت اسلامی در عراق و شام و در خراسان تبریکی تقدیم میکنم از آن عملیاتی که برادر عزیز ما و مجاهد با شهامت و شجاع و یک موحد راستین و یک مقاتل دولت اسلامی که یک عملیات انغماسی و یک عملیات شهادت طلبانه را در عمق امریکا در شهر اورلاندو در یکی از مراکز لوتیزم یالی و تدکارا و امجنزبازا بسر رسند و خیلی ها خوشحال هستم و ای ثابت شد که ما در امی حالت بسیار کمزوری خود الله عزوجل باز هم ما را مزید توفیق داد که در همه گفته ها و همه گفت شنوده را که در پیوند به قدرتنمایی استخباراتی و اقتصادی و فرهنگی و فکری و نظامی امریکا نسبت به جهان اسلام میکرد یک برادر افغانی و یک کسی که وابسته به فکر دولت اسلامی تور یک حرکت که زیر سایه دین است یک عملیات را بجا گذاشت در تاریخ معاصر که برای اینها درس باشه باز هم تبریکی برای برادرای دولت اسلامی از جانب ما آل آمدیم که در موضوعات گذشته و در مباحث گذشته به ویژه در دو مباحث نخوستین این برنامه بیشتر ما تماس بالای فکری بودن و غیر فکری بودن و متحد بودن و غیر متحد بودن و منهجی بودن و غیر منهجی بودن کردیم و بیشتر ترکیز ما در مباحث همین بود که مسلمان باید دارای یک فکر باشد و فکر خدا و مشخصات فکر اسلامی خدا فرا بگیرد تا تعت تاثیر افکار کفار نرود و سوال را که شما متوجه ساخته پیش از این که بالای محتوا و بالای نقاط مرکزی بحث شوم میخواهم مقدمه داشته باشم در پیوان به جنگ فکری پیش از این که وارد بحث شوم میخوام این سوال را کنم که چرا جنگ فکری یعنی در نفس افغانستان یا در نفس اشغال افغانستان ما دیدیم که امریکایی ها به خاطر پیشبرد جنگ نظامی خود پنج یا شش مؤسسه مثل اطلاف مثل انبستگی میلی مثل قوا ناتو و مثل امی دولت اجیر و قوای نظامی عجیر افغانستان به کار انداخله ولی در پیوند با جنگ فکری و پیشبرد این هربه شیطانی تقریبا بیش از چار هزار مؤسسه فیلا در نفس افغانستان و در جغرافی افغانستان از طرف امریکایی ها و یهود و نصارا به خاطر خراب ساختن و مقدوس ساختن و بیدین ساختن مسلمانان افغانستان به کار استاد میشه که بگی که همین محسس در کدام زمان تحسیز شدن؟ میعیم سر سوالتان میعیم در این چکه نیست که تاریخ این مسئله را ثابت ساخته که در مجال نظامی وقتی که بالای مسلمانان از طرف کفار به ویجه دشمنان دیرینه و تاریخی اسلام و مسلمانان یهود و نصارا یعنی وار و انداخت نظامی شده با کمال کامیابی و فتح اگرچه مسلمانان با اسباب کم بوده امی گذار یا امی وار و انداخت نظامی ده جواب داده و ما در تاریخ اسلام دیدیم که در اولین جنگی که صحابه با قشر گندی مشرکین داشت، تقریبا سی سد و عبده یا اضافتر اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم سرشار از فکر اسلامی و اسباب کم بیشتر از 800 نفر اسبا در آوردن و این جنگ و نفع خود چی کردند کامیاب ساختن در یکی از جنگ های دیگی که بعدا به اقوی پیوست یک هزار نفر در مقابل سی هزار نفر کافر و مشک سادگی کردند و آنها را از هم پاشندن و در یک جنگ دیگر که زم میشه در تاریخ که در مقابل رومی ها بود سه هزار صحابه راستین و نسل پیشتازه که توسط زبان رسول الله صلی علیه و تربیه شده بود در مقابل دولک نفر استاد شدند. و ما دیدیم چرا جنگ فکری در نفس کشورای شرقی بخواهی نخواهی فضای دین دینداری در احساسات مردم زنده است و هر چقدر که دقیق همین جنگ نظامی برگیری شود حتی در یکی از کتابا امریکا در افغانستان امریکا یک معقوله دارند که میگه پیش فکر کو باز جلو برو. وقت که اقدام به اشغالی یک کشور میکنند یعنی استراتژی بسیار دقیقه میریزن. و جنگی که متعلق به افغانستان است یا افغانستان اشغالش از توسط امریکای تقریبا حتی در زمان ظاهرشا ایتر از طرف امریکایی ها ریخته شده بود تا در یک احسای از تاریخ ماصر افغانستان بینوان یک کشور و بینوان یک هدف باید از طرف امریکایی ها اشغال شد ولی ایره تاریخ ثابت ساخت که در کدام کشورهایی که تجاوز نظامی می شود تجاوز نظامی که هر چقدر دقیق پیگیری شده باشد و پیریزی شده باشد و بنیادی باشد نمیتواند ملت ها را اشغال کند دائمی و بقا هم ندارد و ما دیدیم در کشورهای مثل کیوبا و مثل هند حتی در در نفس هندستان 360 مذهب رسمی است که یکی از اون مذاهب مذهب, مذهب است یعنی عبادت گاو یا بندگی گاو یعنی یک چیز پوچ است ولی ما دیدیم که گاندی که او پرست رهبری 450 میلیون انسان به هده گرفت و در مقابل تجاوز نظام انگلیسی ها استادگی کرد و در کیوبا فیدل و چاکوارا حتی به خاطر عقاید گندیده و استعمار نظامی بعض متفکرین غربی متعلق به معاشره غرب یعنی به نحوی از آنها بدون ازی که فکر اسلامی و فکر رسالتمند و فکر هدفمند و فکر آسمانی داشته باشن در مقابل تجاوز نظامی استادگی کردن یعنی فطرتن طبیعتن ولو که یک نفر فکرش مثبت باشه یا فکر منفی داشته باشه جانب فکرش آسمانی باشه یا بشری باشد همین تجاوز نظامی را تحمل کرده نمیتواند پس همین سوال جوابش از دید تاریخ همین است که اگر یک کشور قدرتمند مثل امریکا و فرانسه و انگلیس و امثال هم که در راسش یهود و نصارا هستک می خواهد را زیر اثر استخباراتی و اقتصادی و نظامی خود قرار بده یعنی دایمی غالش کند باز چی میکنه به هربی فکری چی میشه متواصل میشه حال این سره از این که با اشغال افغانستان توسط امریکایی ها بعد از 2002 وقتی که امریکایی ها بالای افغانستان حملور شدند با اشغال افغانستان ایجاد مؤسسات و بعدن افزون کردن مؤسسات و ازدیاد مؤسسات این آغاز همین مؤسسات است که ظاهراً یعنی پرده و لباس خیرخواهی را برای مردم افغانستان پیش میکنن ولی در عقب تماماً پروژه های جنگ های فکری امریکا و پروژه های جنگ های استخباراتی امریکا را در افغانستان بخاطر آینده طویل و آینده قصیر بسترگزاری میکنند آلمی هایم سرازی میپیشیم یک مقدمه کوتاه در پیوان به جنگ های فکری ما انداختم و دیدیم یکی از شعرها یا یکی از نویس نویسهای ایندی هستک که او در ابو اشعار خود یا تنزهای خود میگه که فرعون بخاطر کشتن پسران بنی اسرائیل خود را در نفس تاریخ متهم ساخت و مردم علی خودخیستان تا مردم تابع شوند ولی اگر فرعون به عنوان یک فرد به یک کسی که فکر میکرد چند پهنتون و چند مکتب و چند کودکستان اگر بن مردم بنی اسرائیل کرد میکرد میتوانست بدون این که بالاش اتحام وارد شود مردم بنی اسرائیل چی میکرد تابع خود میسازد و ما دیدیم وقتی که انگلیسی ها در نفس افغانستان حملور شدند یعنی بخش اعظم از افغان که احساسات دینی در وجود آنها زنده بودن یعنی اکثرشان مخالفت شدید حتی دست به جنگ مسلحانه زد تا انگلیسی ها را از افغانستان بیرون کنه و ما دیدیم که قوای انگلیس به تعداد 16 هزار یا تر وقتی که از نفس کابل طرف جلالبات حرکت کرد در جلالبات یک اموداکتر زنده برآمد دیگر در نفس را از نقاط مختلف و جاهای مختلف بالای انگلیسی ها حمله شد و در وقت روس ها هم دیدیم که بخش عظم از افغان ها به خاطر فکر دینی یا احساسات دینی که بدون یک مدیریت صحی بود با پا خواستن و در مقابل روس ها استفاده شدند ولی وقتی که عربه های فکری در امی جامعه افغانی استفاده شد ما دیدیم که نفس جامعه افغانی با ویجه افغان که پیش مخالفت شدید خود حتی دست به جنگ های بر علی متجاوزین کافر می زدند بخش اعظمشان در این نظام استاد شد یعنی ما در لوی جرگی گندیدک یک یک یک یک حرکتی کفریز دو هزاره ایستد یا سه هزار نفر مرتد و کافر از مختلف نقاط یعنی به نمایندگی هست ملت افغانستان آمدن جمع شدند و اکثرشان با یک اجماع و اتفاق به استثنای یک نفر یا دو نفر او آنها در این مسئله شدت کردند و جدیت کردند که امریکای ها در نفس افغانستان باشد و این اثرات و به بد جنگ فکری بود که بخش اعظم از مردمه افغانستان حتی به قول یک زاین و یک عالم پاکستانی میگه وقتی که در نفس پاکستان یا در عمق پاکستان یا در معاشره پاکستان انگلیسی ها بالای مردم پاکستان یعنی حرکت فکری را شروع کردند امو فکره. در وجود و ذهن و زمیر معاشره پاکستانی و افراد که در جغرافی پاکستان زندگی میکنن نصب کردن وقتی که انگلیس ها از پاکستان میبرامد همین مردمی که بالایشان بی فکری استفاده شده بود میگه در میدان هوایی میگه به استقبال از این مردم استاده بودن و با اونها گوش میجنگاند و میگفتن کدام گپ که در نایی فکر رو پرنسیب و متعلق به معاشره شما ما آموخته او را در, در زندگی ما فراموش نمیگیم و میبینیم که بیش از پینجا سال یا شهست سال از تحسیز پاکستان به اینوان کشور شده حالا در معاشره شهری خاصتن در پاکستان در اسلام آبات و در پشار کنن مردمی که شهر نشین استن با تعذیب شهری زندگی میکنند. آنها در کل متعصر از فرهنگ انگلستانی ها و هستند. الله خیر شنوندگان گرامی همان قسم که شنیدید استاد یک مقدمه کوتاه در پیوان به این حربه جدید یعنی جنگ فکری برای ما تقدیم کرد حال باز میپرسیم که جنگ فکری چی اهداف را در قبال دارد و چی تعریف نسبت به این جنگ بین متفکرین اسلامی وجود دارد استاد مختصران دا ای این باره بر ما معلومات بتین همون قسمی که شما در مقدمه گفتید و وقت برنامه هم و به شنوندگان این پیام را ما از آدرس رادیو صدای خلافت تقدیم میکنیم که این سلسله دوره های فکری انشاءالله اگر الله سبحانه وتعالی توفیق داد از رادیو صدای خلافت یا بلندگوهای صدای خلافت تقدیم میشد تا جانب جنگهای فکر بدانند الله ولی پیش از این که چون بحث وقت برنامه سه دقیقه مانده یک مختصر چی میکنیم و در مستقبل و آینده این سلسله در سهار انشالا چی میکنیم تعقیب میکنیم در این شک نیست که هر حرکت اگر مثبت باشه یا منفی باشه اگر جانب خیر باشه اگر جانب شر باشد اگر از جانب بشر وضع شده باشد خاطر ساختار نظام نظام داری و اگر از جانب الله وضع شده باشه خواهد خواه اهداف خدا داره و بیشتر چون جنگ های فکری به یک هربی خطرناک و به یک ماشین شیطانی بر علیه جوامع اسلامی استفاده شده اکثر کسانی که در رأس جنگای فکری و در رأس این هربه شیطانی از هست، کفار هستند و بیشتر اهداف اینها اهداف منفی و اهداف ضد دینی و تفکر روحانی است پیش ازی که بالای اهداف برم به خاطر که وقت برنامه کم است مشخص سرمی تعریف جنگ فکری تماس میگیریم تعریف جنگ فکری ده اگر در الفاظ ساده و کلمات و تعابیر ساده شنوندگان تقدیم کنم به قول محمد قطب برادر سید قطب میگه هر او شیوی غیر نظامی هر او کار غیر نظامی بخاطر بیدین ساختن مسلمانان را جنگ فکری میگه یعنی هر روشیویی که به کار انداخته می شود تا یک مسلمان بی هویت و بی وجدان و بی ایمان و از کتاب الله و از دین و دینداری دور کنه این جنگ فکری میگه تا مسلمان دیگه روحی جذبه و روحی احساسات و روحی دشمنی در مقابل یهود و نصارا را نگاه نکنه و ما دیدیم که در گذشته وقتی که مسلمانان بالایشان عربی فکری استفاده نشده بود یعنی بخش اعظم از مردم افغانستان گفتند که انگلیسی ها نباشه ولی وقتی که عربه های فکری به عنوان یک اربا در مقابل اینها استفاده شد و 2014 پیش از 2014 ما در نفس کابل در لوی جرگه دیدیم که تمام بلنگوهای ملت افغانستان یک جا صدا زدن که امریکایی ها در افغانستان باشن چون اینها به خیر ماست پس هر روشیوه و هر رو که مسلمان بی دین بسازه اینمی تعریف جنگ فکری در الفاظ ساده استک سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت و واتوب اليك جزاك الله خیر استاد مگرامی چنانکه که بر ما وعده دادین که انشاءالله در مباحث آینده باز هم بالای جنگ فکری تماس میگیریم و جنگ فکری چی و جنگ است انشاءالله در برنامه های آینده باز هم به با آشنواندگان خواد بودیم و بر آشنوانده ها معلومات های زیاد را ارائه خواد کردیم چون وقت برنامه ما با پایان رسیده به آشنواندگان حافظه میکن السلام عليم ورحمت الله و برکته اشدار وغل تابوگون غاملانگان یوزلار، یاشланган السلام علیکم و رحمت الله و برادران گرامی، خواستیم ام که امروز یک گزارش را تحییه کنیم راجی به عملیات برادر گرامی ما عمر متین رحمه الله چون رسانه های غربی برنامه های فعلاً برای همین موضوع میچرخانن ما خواستیم که نظریات بعضی برادران را راجع به عملیات برادر ما بگیریم و از طریق رادیو نشر کنیم تا که مردم بدانند که عمر متین چه شخصیتی بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم و رحمت الله و برکات. برادر گرامی شما راجع به عملیات که برادر ما عمرمتین رحمه الله انجام داد در قلب امریکا چی نظر دارید شما؟ ما درباره این عملیات که برادر ما عمرمتین که انجام داد در شهر امریکا ما بسیار افتخار میکنیم چرا که تمام مجاهدین خراسان در شهر خراسان بسیار امیال وال شخص افتخار میکنند و خوند میکنن که با خیر در آینده دگم جایدیدین هم و می در هر کشورای اروپایی هستند و در کشور های مرتین میکنند میکنن و باید که اون هم به مثل اومررمین وارد از عملیات های بسیار شدیدتر انجام تان و ما از اشغانی که رئیس جمهور افغانستان است و خبر شدیم که در تلویون در ششه تلویون گفته و کلگی که ما غمشاریکی دکوم یک آدمی لاواط کارای آمریکا فکر تا دیگر جای افسوس است بسیار جای شرم است که یک قدر مردم افغانستان چقدر معلومات داریم چقدر ما علما داریم یا کلشان بی غیرتا را تک رای جمهوریشان گپ میذارام یا خره بردی چی نمیگم چرا چرا این مردم چرا قبی غیرت چرا چرا قدر پس مردم شدن فامیلی که تقریبا اشرفانی چن گپ که ما از لاواثات کار امریکا خامشادی کی این مردم بیخیش هیچ چرا ان جزاک الله خیر شنونده های گرامی شنیدین که برادر ما مراجی عمر متین رحمه الله بعضی را داشت با یکی از برادران دیگه هم صحبت میشیم که اونا در رابطه با عمر عمرمتین رحمه الله چی نظر دارن؟ السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر گرامی راجع به عملیات که برادر ما عمرمتین رحمه الله در امریکا انجام داد چی نظر دارین خواهدتان؟ بسم الله الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله الحمدلله بسیار فخر میکنیم خوش هستیم که برادر ما عمرمتین رحیم علی چون این عملیات تکانده را انجام داد و این ما یک تدا به عملیات های مجاهدین که در غرب زندگی میکنه بدون که وسایل پیششان باشه از تو عملیات مستفید می شود. یر ما بسیار فخر میکنیم سر و کفار و مرتدین یک را را بند میکنه خال الحمدللہ چندین درهای دیگر را باز میکنن قسم که میکفار و مرتدین برادرای ما را در راه سرشان بسیار سخت کرده و تقریبا بند کده که کسی نمیتونه هجرت کنه در دارالخلافه خدا براسانه با فامیلایشان خال الحمدللہ یک تدا بود بر ما یک یک زنگ بود بر ما که کسانی که تباله را هجرت نکردن در کفر زندگی میکند یا یک میگزنگ بود برشان که اینا خبر شوند که الحمدلله ای در باز است اگر ما اجرات kada نمیتونیم همین جا بر ما یک زمینا مساعد شود چون ما احساس کدام میتونیم که ما الهوام در دارالخلافه هستیم عملیات ها را پیش میبریم و بر کفار هم یک خبر بسیار بد است که آل راه را, را گرفته نمیتونه در هر جای الحمدلله ای رقم عملیات های از بسیار شدید و تکاندهنده انجام خواهد شد انشاءالله الله خیر خب آنده های گرامی میریم با یکی از برادران دیگه هم صحبت میشیم که آنها چی نظر دارن السلام علیکم و رحمت الله و علیکم و سلام و رحمت الله برکات برادر محترم راجی به عملیات برادر و عمر متین که در امریکا انجام داد و علمای سو بالای زینا رد کردن چی نظر دارین خواهدتان بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات را که برادر ما در کشور آمریکا انجام داده بسیار یک عملیات موفقانه بود و از این عملیات انج... الحمدلله ما مجاهدین همه ما بسیار خوشحال هستیم و می‌خویم از کسانی که نمی‌تونن هجرتن به خلافه تا واستوان خود با مرددین همچون عملیاتی که برادر ما مرتین انجام داد بتعذی که بیشتر این کارا چون در کشورهای غربی بسیار کارهای هست که اگر کار را با حیوان دیگه نمیکرد مثل که یا همجنس‌گرایی میکنن بی خاطر این عملوحشییانایی که یا میکنن یا ریس ضیوان بتر ن و انجام زیتون مردم باید از این بتر شوند و افزود و لما که درباره از این افسوس کردن و غ شدیکی کردن با یک کسانی که همجزگرها هست و همچون کار بسیار مخالف انسانیت است اسلامیت خوشیی میکنی و ای علماء خود با می گیرن و خدا مسلمان میگن و از طرف دیگر ری جمور شدیکی کرده با این مردم یه ای بسیار شرمماور از رئیس جمهور و از مردم که ای ام این شخص رای دارد از این مردم خواهش مند که وای رقم انسان که با کسی که یک عمل که انجام ده که ایوان با ایوان انجام که غمشاریکی می کن از تو انسان برایت حاصل کنه و از تو رئیس جمهور دیگر چی کنن و بزد ایز این ای تو رئیس جمهور برایت حاصل کنن جزاکالله الله. خلافت بلند کل رعبتن کل زولمتن باقری زلگان مظلوم مسلمان بسایغ زگان امدى تقوی قلم اختباران مظلوم مسلمان بسایغ زگان امدى تقوی قلم اختباران یزیل قط میش بول چوش یخ بزده امدى کافردن نورکوش یزیل قط میش بول چوش یخ بزده امدى کافردن نورکوش عیب غری لغت قل ما هر دن یحکیت بو خلافت allah biz بیلن شونا بز Bolduq بودک ام دی allah اززتنی بلگن الله بز بیلن شونا بز کلگن بودک ام دی ها اززتنی بلگن کافر دا شو هل تباق دا زوال یا شایمز ام دی چطرت دی بلغن قصاص انتقام آلمز دوام کافر و اصلا برمیمز آرام ایمت من ارکک بول سا پاک تیلیک بار بو هایت бу شرابتگه، ای تیلیک اتغن باق شهیدلگه بو شرامتگه، ای تیلیک اتغن باق شهیدلگه بیل دور کلوب، الله که تولوب، بولر مو اززهد қуллуқ دنردق بیل دور کلوب، بولر مو